خیال میکنم که اون قذل 188 نسخه مرمو خانلری در نظر بازی بیخبران خبران ایرانم من چنین هستند که نموندم به گریشان دانند رو خوندیم یه چند بیسیشم معنی کردیم از که معنی نکردیم حالا پرگاه رو که رسیدیم معلوم میشه و باید چهر بگیم میگه آقلان نقطه پرگار وجود دارد ولی عشق که در این دایره سرگردان این چقدر تناسطب را آید دارم. اولا پرگار وسیله دایره زدن دیگه و شنها که میکنه دایره میگه بعد دو تا نقطه دو دوتا نیشتره یکشون وسط و ثابته یکی دیگهش دور می‌زن می که درسته که آقلان نقطه پرگار وجود هست ولی وقتی که کار به عشق بیوکته معلوم میشه که اونا در این دایره این دایره‌ای که خود پرگار میزنه سرگردونن، هست برای اینکه یه لنگ پرگار سرگردون یه لنگش سابقه آشغان نقطه پرگار وجود هم ولی آقلان عشق داند که در این دایره سرگردان خاجه با پرگار خیلی اه بازی کرده خیلی و چیزه قشنگ میگه آسوده بر کنار چو پرگار میشدم میاد. اون لنگ متحرک شده. آسیده بر کنار چو فرغار میشدن. دوران چو نقطه عاقبت هم درنیاد. بس اون اون است. این فراون داره یک جا پرگار رو به معنی مکر آورده. که این معنی است که خیلی معمول نیست. در مورد معصوبش میگه گر مساعد شودم میرسیم وقتش گر مساعد شودم دایره چرخ کبود اون دایره را آورده هم به دست دا باز به پرگار دیگر به پرگار دیگر رمیزوی کلبی اهدما با لب شیرین دهنان بست خدا. ما همه بنده و این قوم خداوندان ا سوفی معتقدند که هیچ موجودی غیر از انسان عشق نداره. و ملائکه دارای احوال ثابتاً یعنی خلق شدن برای اینکه رکوع کنه، خلق شده‌اند برای اینکه سجود کنه. خشم و شهر وقت درشون وجود نداره. بنابراین هیچ کاری بدون واسطه‌ای که براش خلق شده نداره. در حالی که انسان هم یه جنبه انسانی داره هم یه جنبه حیوانی یعنی از لحاظ بدن حیوان به تا برقی با حیوانات بیگه خشم داره، شهوت داره، خوردن داره، خوابیدن داره و اینا هم بهی سعی میکنن اختیار آدم بکشن طرف خودشون دیگه وقت آدم این وسط چیزه آدم این وسط می تکریفه که اگه به طرف انسانی متمایل بشه مقامش از فرشته میره بالاتر برای اینکه فرشته کاری مجبور اون کار و اگه به حیبون متمایل بشه از حیبون پستره به دلیل اینکه حیبون نمیفهمه ولی انسان نمیفهمه به همین دلیل حالا داستان های مفصل هم دارن ارز کنم که یه قصه ای هست نه قرآن قصه هاروت و مارود نمیدونم شنیدید نشنیدید هر حال یک کتاب درجه یکی هست به فرهنگ طمیات مال دوست ویروس شمی ها همه این استار رو نقد کردیم اینجا بسته و شما کل نمیتونن بده. داستان دوتا فرشته است که به خدا گفتن که تو چه آدم و خودت کردی در روی زمین که خون می‌ریزه و پسات میکنه و هزار بعد وقتی وجود میاره و حال اینکه ما همش تو رو عبادت می سجده سژده می کردیم خداوند فرمود که من چیزی رو می‌تونن چانه‌ای رو می‌تونم گفتن چطورو با اختیار داره و مسئولیت داره گفتن خب ما هم می‌تونی؟ گفت نمی‌تونینا؟ گفتن که چرا؟ گفت خب می‌تونیم به صورت آدم در می‌انم بریم به دوی و وسط مردم زندگی‌تونی به تو برشتی. البته اصلا استاد من مرحوم دکتر محین یه مقاله نوشته و نوشته که هاروت و ماروت صورت تحصیف شده اسم عربتات و امرتات که در فارسی شده خرداد و امرداد و اینا در عطل اسم این برجا اسم دوتا فرشته هستن اسم ماهای دیگه شمسی هم اسم فرشتگان دیگری به هر حال خورداد و مرداد او متقل به صورت حاروت و ماروت اومدن در قرآن و قصه این است که آمدن دو به صورت آدم شدند و چون علم زیادی هم داشتن در آسمان ها بودن اینا آمدن مردم بسیار محترم نیشستن و شروع کردن به قذابت در قیمان مردم یه زنی آمد پیش اینا و آقایون قاضی ها گرفتارش ما عبرو کارو خودشو کرد و گفتن خانم خانم با کرد شماییم یه گوشه چشم انایتی ما بکنیم نا گفت که نه اگه من علم سهر بی آموزیم من اون وقت ممکنه که یه تکشو حالتون مکنه اگر نکنه گفتن خیلی تو علم سهر به این زن آموخت این زن هم ستاره شد رفت به آسمان و ستاره زهره اون زنه که بهش میگن که ای دخت و بعد اینا موندن حالا کارهایی بعد کرده بدن اینا اینا موندن هم باید دخت بعد خدا گفت خب حالا دیدیم که حالا چی اختیار میکنیم عذاب دنیا رو میخوان یا عذاب آخرت رو گفتن نه ما طاقت عذاب آخرت رو نداریم در دنیا مرکاری میخوای خدایا در دنیا بود بعد میگه که اینا در چاهی در بابل به یک موی سر آویزونن و هر کسی کنار اون چاه برسه و پایینا برخورد بکنه به اینا یه چیز میاموزن سهر میاموزن یا علمان ناس از سهر به مردم سر میاموزن و حافظ یه جا میگه که رد شدیم از این قضل گر بایدم شدن سوی حاروط صد گونه ساحری بکنم تا بیارمن اشاره بینید بیارم. این است که عشق جزء مختصات آدم یه جزی که حافظ میگه فرشته عشق نداند که چیز قسط نخواه به خواه جام و شرابی به خواه که آدم ریست این که میگه که عهد ما ما یعنی بنی نوع انسان عهده ما با لب شیرین دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانم خداوند یه منیش صاحب و مالک اینجا که ما همه بنده این خداوند هم یعنی صاحبش که مالکی بود این اشاره به عشق که در وجود آدمی سرشته شده و واهی هم به میت تعبیر میشه اون قذل خیلی معروف و حافظ باز دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند باز اون میخانه میخانه اشک یه جای دیگه خودحافظ همین سریح میگه میگه در میخانه اشک ای ملک تسبیح بود کندرانجا تینت آدم مخمر میکنه گل آدم اونجا میسه برای میکانه عشق بنابراین اینجا که میگه که عهد ما با لب شیرین دهنان و از خدا یعنی فقط ما آدمی زادگان هستیم که عشق داریم مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم آه اگر خرقه پشمین به گروه نستان مفلس اصلا فلس یعنی پور خود فارسیش میشه پشیزه فلس ماهیرم به فارسیش میگن پشیزه یعنی چیزی مثل سکته و مفلس یعنی آدمی که سرکاش با پول خرد افتده دیگه پول بالاتر پولای ذراسی نداره میگه ما مفلس هستیم توام به معنی میل و آرزو اصلا در عربی هوا معنی عشقه هوای می مطرب داریم یعنی میل و آرژوی می داریم چه خاکی به سرمون بریزیم اگر خرقه فشمون گروه نگیران خرقه صوفی عزیزترین چیزشه سند ارتباطش با سلطلشه. از دست پیری که به اون سرسه پرده این خرقه رو میگیره و هیچ وقت نباید از خودش جدا بکنه وقتی کسی حاضر بشه اینو ببرید گیر و بذاره ببینید که در چه حالی در زم باید بگم که یه سنتی از یه بار مثل اینکه گفتن اینو یه شاعر عربی بود به نام سلم این سلم معروف شد به سلم خاسر خاسر از خسارت و قوسین یعنی زیانکار این سالم خاصر، علت اینکه که به این معروف شد، این بود که مصحف داشت که قرآن از نوشته جدده داشت رفت می این مصحف رو گذاشت، شاب گرفت خود <تصفيق> <تصفيق> و به همین دلیل اونجایی که خواهجی این فرماید که در همه دیر مقان میز چون شیدایی هایی جایی گروه باده و دفتر جایی احتمالا اشاره ای به هم عمل حال مفاصره که مذهب و گروب عادی گذاشتیم این است که مفلسان و هوای میموترب داریم آه اگر خرقه تشلیل به گرون استان اگر خرقه تشلیل به گرون نگیرن من چه خاطی سر قرار لاف عشق و گله از یار اینجا باید یه الان سوال میشه لاف عشق و گله از یار زهی لاختون عشق بازان چنین مستحق حجام میگه آدم اش بگه آشق هستم بعد از محشوبش هم گله کن میگه چنین آشقانی مجازاتشون حجام مستحق درسته و مستحق درسته مستحق یعنی استحقاق دارنده همچنین کارمند دولت میگن مستخدم دولت در حال که مستخدم اسم فایله یعنی استخدام کننده یعنی یه داره کارگزین اون کارمند استخدام شده هست مستخدم نه مستخدم ولی خب اینا رو حالا در حال آدی میگن مرحوم تغییزاده هیچ وقت نمیگون مستخدم یا محروم و زمان همیشه میگو مستحق یک وقت نمیگو یا کرامت نه کرامت نصیب ماست بهشت خود آشناس برو که مستحق به کرامت گناه داره یه کسی که لاف عشق بزنه و در این حال گله از یاد بکنه لاف دروخ میزنه اصلا لاف زدن به معنی چیزای بی حقیقت رو به خود نسبت دادن. من چنین میکنم، من چنان میکنم، ای خودیه لافت بخی بگن یعنی که اگر ثابت نشد خداحافظ میگه که چل سال بیش که من لافت میزنم که از ساکنان درگه پیر منم این لافت میزنم اینجا حافظ نمیخواد من دروح میگن ولی میگه دعوی میکنه حالتی دعوی داره یه کسی دعوی کنه که عاشق و از یارش بکنه این تو و چنین اشخوازی باید گرفتار خوری بشه جلوگاه روخ او دیده من تنها نیست ماه و هم این آیمه میگرده هم. همین بعد جدا از هم نوشه میدونید که, می که برای اینکه شما کسی رو ببینید نقش اون شخص باید توی چشم شما بیانده و من کسانی که الان میبینم تصویرشون توی چشم هست بس نگام بکنید میبینید که هر این بنابراین چشم رو تشبیح کردن به آینه یا چیزی که تصویر رو ببینید کس میگه جلبگاه رخ او که البته مراد حق و منصور عذبی و ابدی میگه جلبگاه رخ او دیده من تنها نیست اما آیندار دار و آینگردان گردان به معنی مشات است کسی که زینت میکنه آر آرایش کرد میگه فقط چشم من نیست که جلبگاه گاه رو خورشید. ماه و هم همین آینه رو میگردن. یعنی ماه و هم آینه داره مشابه جلبه رو به او هست به همین دلیل بعد هم و این از هم جدا بشه جلوه گاه او دیده من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردن واسه خورشید به شب پره اما نرسد که در این آینه ظاهب نظران حیرانه شب پره یعنی خوب باش خوب باش چشمش بغلا زعیفه طاقت نور شدید نداره هم دارید روزها میده تو دوشهای تاریک میشه جایی و شب گروپ که هوا به خلاف نور زیر قرمز رو خیلی خوب بود یعنی تو تاریکی خیلی خوب بود یه سلسله یه دسته حیواناتی یا اصلا حیوانات مرغان شکاری به شب میان شکار، یکیش جغده جغد هم روزا باید برید تو تاریکی این چشمایی درشت نور شدید و تحمل چی ولی شب شب که شما در ظلمات جلو پاتون تا یه قدمی نمی‌بینی، او کاملا موش سهرایی رو که از درونش در اومده و بعد داره میره که خسارت برسونه به تحسار قدم به قدم میبینش و بعد درست در جایی که دیگه نتونه فعال کنه یعنی دونش نباشه و راه با چه میاد به سرش و این حیبون خیلی کشاورزان مهرمانه و برای شمی مفیده و نمیدونم به چه مناسبت معروف چیزه این که در بیان این بیان سینه حتی سعدی میگه که ماری تو که هر کراف ببینی بزنی یا بوم که هر کجا بکن معتقد معتقل بزنی که جو پرد و پنابرم که قرابه. به علت گوشه نشینی و گوشه رفتن تو دیرانه ها و جاهای تاریک میتوچه کرد میگه شب پره یه کور که نمیتونه وزق خورشید بکنه برای که خورشید که بیاد اون باید بره پنهان. یه چیزی داره سعدی گر نبیند به روز شب پره چشم آفتاب را چه بنا. راست هزار چشم کنان کور بهتر که آفتاب سیاه نمیشه بگیم آفتاب سیاه بشه تا جناب ایشون چشم ببینیم جهنم که ندید بس به خرشید به شپره احما نرسد چپره هم حیبونه خیلی خوبیه موقع غروف نید و خوراکش از حشرات و سوام و حوام و حیبونات گزندوی این یه انواج سوکی میده بیرون گوشهای بزرگی هم داره مثل قیف انواجی میده بیرون این انواج وقتی میخوره به اون حیوان برمیگرده به خودش حس میکنه. دقیقا تشتیقی می به خودش هست سافلیه می میدونی اغلب دیدید موقع پرواز میرسه تا مثلا یک سانتی متری سیم تلگراف پوریمون هره کشه برای که فرستاده و میدونه جلوش ما بدون اینکه بده و میاد این حیواناتش بار می‌کنه این چیزها رو می‌ره درزه مثل می‌کنم گوربقه هم هم کنه بسیار نسیدیست و خوراکش، پشه و به خصوص پشه و این هشراتیست که شب فعال هست و اون گوشتهای لقم رونشو که اینجاها خیلی خوب برورده بر بر بر می‌کنم ازش مثل رون مرگ، اینا از خوردن هم پشه شو نباید بخش که زبانی داره شبیه زبان مار تراست میاد بیرون در آن واحد یعنی در یک صدوم ثانیه میاد بیرون و پشه رو میدیر یعنی فشار قبل از اینکه به سمه چه خبره رفته کنبال حالا گنده ترم گیرش بیاد میخوره ولی اینا رو ما چیز نکردی در اسلام که معتقدن که قرباقه مسخه یعنی آدم بوده و گناه کرده تبدیل به قرباقه شن چند تا ایبون هستن که موسوخ بهشون میگن یکی فیله این ها گوشتشون هم میگن یکی فیله یکی خرس، یکی میمونه یکی قرباقه هست یکی مارماهیه شاید بعضی هیوان هایی باشه اینا معتقدم که این حیوانات آدم بودن به علت گناهانی چیسته بعضیشون تحقیلش هم گفته شده ارز کنم که در قرآن کریم آمده است که دروحی از یهودیان به نام اصحاب سبت سبت یعنی شنبه شنبه تحقیل یهودی هست. اینا ماهییر بودن به وقتی میرفتن برای ماهی روزای هفته ماهی های به تلیل اون روز شنبه که میشد بیا اونا حس کرده بودن که نیست میومدن فراغون فراغون میومد بعد اینا یه فکر کردن گفتن خب ما چیزی نمی کنیم شنبه رو زایی نمی کنیم. ولی دومه شب دامو میاندازیم صبح یه شمبه میگیریم دلک جوزی زده یه دو این ماهی مبسوط گرفتن یهوه خدای یهود که بسیار دیره مستقیرم هست و میگه من تا هفت پشت افراد رو به گناه پدرشون عذاب میکنم ولی در کتاب مقدس در سورات هست خیلی آتش ترف میشه که شما احترام شنبه رو شکستین و بهشون نزید کونو و قردتاً خواستن تبدیل و شید میمون های زیان کار از اون روز میمون تشمید. بس به خورشید به شب پر که در این آینه صاحب نظران ایران هم. اینجا در این حال صاحب نظر به اون مهنیست و خرشید هم رو ذات حقه و شبخورم به معنی مردم جاهل و نادان و اوامون ناسه در این حال خورشید رو با چشم معمولی هم نمیشه دید یعنی چشم بینام نمیتونه به خورشید نگاه کنه. و کور میشه اصلا. هستن ادهی هستن مرحوم استاد ما که من از دهی اومدم مرحوم خورزافر از دهی بشوگه که مردم اینجا شبخورم برای اینکه ناهیه کبیریست شبه ها خوب سرد میشه بسیار سرد میشه و اینا صبح زود میان سنکیش آفتاب میشه به چشم رو میتونم به آفتاب بعد مدت شبه اینا آسیب میگونه شبه اینه که نمیشه اینه صاحب نظران شب برای کور که چی کسانی هم که چشمه حسابی دارن در این آیمه حیرون مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار چشم سیاه محشو کار میکنه؟ هم مستوره؟ یعنی پوشیده هم مستوره حال که مستوری و مستی زده هم. فنده الان اگه سر سوزنی از این, این ملخباه های سفرده بودم فنده بودم اینجا تا دو کلمه حسزن معلوم بود حالم قرابه اینکه نمیشه میگه ولی چشم سیاه تو این کارو میکنه هم مستوره هم مسته و شاید مگرم یعنی شاید مرا چشم سیاه تو کاریات بده وگرنه من که اینجان هیچ دست مستوری مستورو با هم نمیشه داشت گه از اندیشه ما مخبچگان بعد از این ترده به گروه نستانند. اولا اینجا ملازمی فرمید که به گرون نستانند. اون چند بیت بالا در بیت پنجام بود. مفرسان این هوای میموکفه. اینم تکرار شده قافیش به گرون نستانند. این احتمال این هست. تا خاجحافظ یه بار یکی از این بیت رو سروده بعد یه بار یه بیت دیگه رو سروده خواسته عوض کنه در جای اون یکی تو بعض این این بیت بوده تو بعض این اون یکی بیت بوده مرحوم خانلرگی هر آورده تا الا و به نظر من میاد که اون بالایی مفرسانی هوایی می میمورد داریم بیت بهتری هست از این پایینی گرشونده گه گر هزن بیشه ما مغوچگان، مغوچگان یعنی خدمت بزارای میخانه برایم که مغان، اصطلاح میخاندار بودن و بچهاتون هم اونجا خدمت میکرده میدونید که امت مسلمان کس کشمست که شراب بیاندازه و بفروشه و فقط میخورده میخریده و میخورده انداختن و تحییه کردن و سیر کردن ایناش رو بوده برای کفا یهودی، مسیحی، دردشتی اینا این کارای پشت رو انجام بدن و ایشون دشگیر اونجا فقط بخورن بس. اینه که میگه مقبچگان اگر از اندیشه ما آگاه بشند بعد از این خرقه سوپی رو گروه برمیده گرد به نزهت جه ارواح تو بویت و باد عقل و جان هستی به نسا رفت این یعنی <متصفح> گردش و تفرج نزهدگه یعنی تفرجگاه نزهدگه ارواح یعنی جایی که ارواح میرن به تفرج و گردش اگر بوی تو رو با ونجا ببره برای پیشکش و برای نثار یعنی پاشیدن سر آورنده این مجده گوهر هستی رو عقل و جان به نثار نیافشانه افشاندن به معنی پخش کردن و پرتاب کردن چیزی است که دارای اجزا باشد مثل دانه افشاندن دانه افشاندن یه مش... گندم یا جو دستش پخش می کنه دیزنید و می اینکه میگن نیزن اخشان عقل و جان گوهره هستی به نسار اخشان حافظ زاهد رو دوست نداشته دیگه و اینکه ظاهد خودبین می شود ظاهد یه مدتی نماز خوندن و قرآن کندن تو اینکه دسته سرخاله خدا شد بعد ناصر فلو که می‌دیده می‌گوشت خب این که می‌تاره لابوت بایست دن می‌شاش و این که جهنم می‌بره بوم شد یک کاری به باطنش رو این این چقدر آدم خوبی روش دیده که نداشته خوبی. این از که زاهد خودبینی میاره محافظ یه جا که زاهد و عجب و عجب یعنی خودبینی زاهد و عجب و نماز و من و مستی نیاز تا خود او را زمیان باکه اینا من روشم اینه مستی و نیاز زاهد هم روشش اونه بوجب و نماست تا ببینیم که یه که میگه زاهد غرور داشت سلامت نبود را رند از ره نیاز به دار سلام اینه که حافظ هیچ میمونش با ظاهر بکنید در ذهن بگم که شیخ چند بار گروه گفتم بازم میگم صد دفعه بگم کم شیخ که میگه می می حافظ اولا معنیش آخونده این روز چون این روز میگیم شیخ و در نچه وقتی میخونیم که شیخ مثلا پلان فکر بونیم که آخونداریم اصلا این روز. شیخ مرحله دوبومه یعنی مقام دوبومه در سرسده تصرف اول پیره یکیست در یک. بعد شیخه برای اینکه پیر در ده جا مثلا دیست جا خانقاه درد نمیشه که همین جاها باشه که مرتضا علی نیست که گفتن مرتضا علی یه شب چه جا میکنون کردن حضرت هر چه بود خب مرتضا علیه شاید ولی پیر نمی‌کنید، یه چه پیش بنابراین از جای خود شیخ کسی رو اونجا. در هر خانقایی، جدا او رو بهش نگم شیخ و شیخی که حافظ می‌کنید، ایمان اون کسانی که ما امروز بنام شیخ و آخون در اینا حافظ، زا باعظ، زاهد و امثال اینا هستونگید باعظان که جلبه در محراق و نزور به خلبت می‌رسند که آن خایدگر می‌کنم و اضافه کنیم ولی شیخ، معنی اوکیانه داره اصلاً رفتی شیخ امروز نکنیم زاهد ار حافظ نکنند. فهم چه شد؟ که اون فهم، بفهم در ضمن باید بگم که فهمیدن رو ما تازه ساختیم قبلاً فهم کردن در حالی که در دوره حافظ مثلا طلب بوده کیز تا از در میخانه گشادی طلبی این طلب آخه خودش مستر عربیه بعد ایدن فارسی در میاریم میشه مستر فارسی طلب ایدم طلبی طلب طلب این بوده ولی فهم و هنوز نساخته بودن فهمیدم فهمیدی فهمید نبوده دوره حافظ فهم کردن. محروم پورزانفرم همیشه مگفتند هم حرف شما رو فهم نمی کن نمی فهم که نمی فهم کن زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد؟ دیب و ریزد از آن قوم که قرآن کنند زاهد میگه بیب خودش هم میگه اون قوم که قرآن کنند یعنی معنی اصلی قرآن شنبه، باستی نمیده شنبه هم از همونه شبت، شنبه هر کنال خودمشون قواهی داشتن حتی برای خود تصوق شما بخواین تعریف پیدا کنین مثلا پنج هزار تا تعریف به اعتبار مسئله یعنی خیلی چیزی گلو بشارد بنابراین مسائل مربوط به دادن و گرفتن این هم همینکه اینا خیلی آداب و تحقیب های بختلف داشته که باید برای دیدن جوزی شروع روزی جزئی کنیم به کتابایی که در باید اسم خایل و اسم مخصول اسم خایل مستخدم اسم خایله یعنی استفتان کننده مستخدم اسم مخصوله یعنی استفاده شده من رفت صحابیم غزلی رو رو کردی یکی به دست نه این غزلی که حالا در به به دریابند دو یابند در بند در بندی در بندی در بندی در مانه در, بنده. در بنده. این غزل می کنم به دلیل اینکه تمام تکیه ها ساید این کلمه آخر بسن سمن بویان قبار تو بنشینن بنشان پری قرار دل تو پستیزن دستان سه که جفا دلها تو بربندند بربندند بر بندند انبرین جانها چو بکشاین دفشان سه چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند سه رویم راز فنهانی چو میبینند میخوانند به عمری یک نفس با ما چو برخیزند بنشینند برخیزند نهار شوق در خاطر چو برخیزند بنشینند سرشکی کوشگیران را چو دریاوند دریابند. رخ مهر از سهرخیزان نگردانند دگر چو منصور از مرادانان که بردارند بردارن. به درگاه حافظ را تو می خوانند در این حضرت تو مشتاقان می آزارند نازارند که با این درد اگر در فند درمانند درمانند اولا این یک قضل آتروباتیکی هست حافظ با این الفاظ دو نداریت بندبست و هیچ غزل دیگه حافظ به این صورت نیست با این الفاظ اینطوری تردید داده با شود افتارایی تردید با شود نصابه رو بیشتر تردید که این الفاظ روابط اینا بخوند شود خیلی هم زیباست ولی یه سر غزلش و درکش به کنگ سرد و علاوه غزل ایرکانی در حقیق. من اول اون بیت آخر رو یک کلمه میگم و بعد در اینکه بیم سر غزالف تحصیل صحبت کنیم یه چند دقیقه چیز میکنم این بیت آخر که می در این حضرت تو مشتاقان نیازارن نازارن که با این درد اگر درد بند درمانند در دو تا بیت دیگه می خونم یکی بیتی که مرموم استادم هم همیشه هم می هر که در این بز مغرب‌تر است جان و لا بیشتر <تصفيق> یکی هم یه شعر خود حافظه میگه منو مقام رضا بعد از اینو شکر رغب که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان اگه نیاز بیارم این درگاه ناز در مقابلش و با این درد اگه فکر درمان باشن استادشون با بر که برای اینکه این درد خودش مهمتر از درماش این این قصه است آره اوری کمی استراحت پی گرفتن و دنبال کردن تا بالاخره ما تلفن کردیم به دخترمون دختر اونم گفت که من ندارم ماساژش گفتم ببین چاره پیدا کنین اینا یکی از شاگردان، پسر نجف دریاباندری گفت چی می‌خواید گفتم اون برنامه‌نگارش گفت من دارم پس داد به ما بعد من رفتم تهران یه نسخه از چاپ دوم که فرم فور 16 صفحه 16 صف، چاپ میشد داده بودن به من که ببینم که غلط داره غلطنامه تنظیم کنم محمود یا چیزا اونم داشتم که چاپش خوب بود اون رو گرفتم و باید نشستم و فقیبا نزدیک که دو ماه این غلط های این کتاب ها گرفتم به طوری که دیگه هیچ غلط نداشته از اون جاهایی که غلط نداشته یه کلمه ای که یه جا غلط میده از اون جای دیگه بریدم چسبموندم روی این برای اینکه غلط ها چ امیدوارمیه کتابیه غلطش. بعدا مقدمش رو تغییر دادیم یه مقدم برای اینجا نوشتیم و اینجا چاپ شد و دو قسمت یه قسمتش همین مربوط به مسائل مربوط به چیز نوشتن که چه جوری باید چیزی که تا صفحه نشته میاد. بعدش هم، داستان‌ها و موضوعات دیگه و آخرش هم یه مقداری راجبه اینکه رمانتیسم و کلاسیسیسم از این حرفا رو یه هم کردیم دوره که من دانشجوی رشته ادب فارسی من خیلی خفن نشستم نه خدا خیرت بده و هر حال بله این کتاب چاپ شد کسی اگه بخواد چیز نوشتن پارتیری یاد بگیره واقعا راهنمای بدی نیست حالا من دیگه نو از کار خودم تحرید کنم اما راهنمای بدی نیست نسبتا دقیق گفته چی کار هر کسی در هر مرحله هست چی کار بکنه تا کارش سمن خب سمنبویان بارقم چو بنشینن بنشان خبیه که کسی سمنبویان سمن یعنی و سمن و سمنبویان یعنی معشوق محشوقان میگه محشوق وقت که بیشینه گوبار قم و خورو میشونه برای که محشوق تا وقتی بایستاده هنوز به دام نیمده و امیدی به وصلش نیست اما وقتی نشست به قول خود خاجه شیراز میگه بند قباتو با کن بگو شا بند قبات ای مهر کراه تا چو ظل فت سر صوب زده در پاک بکنه بند غبارو باز کن بعد عرض کنم که میگه اینا وقتی بنشینند قبار غم, غم رو از بین میبرن. برند قری رویان قرار دل رو بسکیزند بستانند برعکس وای از اون روزگاری که اخو خانم برکنم ایدالی هری قرار دل چو بستیزن وقتی سر جنگ باشه قرار دل آدم رو به فطرها که جفا دلها چو بر بندن بر بندن. که چیزی روی از قلاب کنن کنار زین پشت استباد که بعد با کمان با تنابی کسی سوار داشته اگه سیدی می کرده یا تو جنگ بوده اگه سر دشمن چیزی این بریده یا اگه تو داشته یه باری که می خواسته بره این رو به اون فتراک میگه اگر که دلها رو به فترات جواب جفا ببندن دیگه بستن دیگه وای بایدون که داره به فطرات جفا دلها چوب بر بندن پر دو خون برای تحکیده وحشی واقعی میگه ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم امید ز هرکس که بریدیم بریدیم دل میز کبوتر که چون برخواست نشیند از گوشه بامی که پریدیم پریدیم رم دادن سید خود از آغاز غلط بود اکنون که رماندی و رمیدیم رمیدیم این دوباره برای تحکیده به فترا که جفا دلها چو بر بندند بر بندند ز زلف انبرین جانها چو بچاین بخشانند اگر جانها رو از خم زلفشون بیرون بیارن میرزن دوید جان تا وقتی قدر قیمت داره که در حلقه زلف او باشه وقتی از اون راحت بیرون دیگه این افشانش افشاندن رو قبلا گفتیم سه چشمم لعل رومانی چون میخندن میبارن لعل نوعی از یاقوت یه قدری کمرنگتر و یه قدری ارزان هم لل هم یاغود اکسید آلومینیوم آل دو او یکی از اینا زهبارش درد این ما چونه نیست نه نه ما نیست هم یاغود هم لل اکسید آلومینیوم آل دو او و خیلی تعجب نکن در میون خاک در خاک یه وقت یه برقی میزنه یه ای میزنه یه حرارت شدیدی وقت میرسه یه رگه یه از این تبدیل میکنه به یا اونی مجو برده و بزرگتر معدنش هم در جزیره سیلان سرندی الان سلیلانتا سلیلا بشین اینجا خیلی هست رومان یعنی انار تو قرآن هم آمده و فاکتون و نخلون و رمان رمان یعنی انار لعل رمانی یه پرقیمت میده که مثل انار مثل پیومه انار شبیه پیومه انار میگه وقتی معشوقان میخندن از چشمونن لعل رمانی می‌بارن مراد عشقه عادت عشق هیچ وقت سرخ نمی‌شه اینو قبلا توضیح ولی چون چشم کسی دیریه می‌کنه به علت هجوم خون سفیدی چشمش سرخ میشه این رو در مقام والده گفتن عشق خونی حافظ میگه عشق خونین به طریبان بنمودم گفتن درد عشق است و دیگر سوز داواله یا اینجا لعل رومانی از چشمان می خوند اگه وقتی میخندن خوندن لعل رومانی از چشمان می بارن ز رویم راز فنهانی چون می بینن می استاد خیلی این شعر می خوندن. از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل عاشق و بیچاره هر جا هست و از این همین یکه تا منه می بینن معشوق هم خبره است در این طارق. بارده که که کار میکنه و عملی چند چه نتیجه داره یه قدیشونی زرویم راز پنهانی چو میبینن میخوانن به عمری یک نفس با ما چو بنشینن فرقیست میبین کار دارن قرار دارن که منوز ننشست یا گرم نکردی به عمری یک نفس البته در زمین بگم که لحظات به سال خیلی زود گذره یعنی طرف یه شبانوزان که بشینه به شش یه نیم ساعت بشتر نه. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برپیزن نحال شب در خاطر تو برپیزن بینشان وقتی بلند میشن تازه درخت شوق و در خاطر آدم نیم سرش که گوشگیران را چو در یابند در یابند عشق گوشگیران میگه اگه برسند بهش محصول اینه که اگه مراعات یه گوشگیر را تو عشق میزی بکنند و به مرادت او رفتار بکنند عشق او تفکیل میگه اون چه مورباری دی؟ اینکه خداوند مراد اون محشوبی رو که نسبت به عاشق مهربانی کرده میده این دور فایلا عشق دور نمیشه که سرش که گوشگیران را چه دریابند دور یابند روخ مهر از سهرخیزان نگردانند اگه بدونند یه مهرشون رو از سهرکیزان بر نمیدارد چون منصور این منصور اسمش منصور نیست من از این مقدسه دو برگلین حالا آقای با, با اسم این عارف معروف که به حسین حسین ابن منصور حلی منصور اسم باباش ولی بسیار معروف شدن چسانی اسم پدرش ابن سینا پدر سینا بوده خودش حسن یا حسین حسین ابن علیه بس. ولی چیز مولانا می که بو سینا از رازی صد دفعه اسمی نمیسن نووت راضی. نمیسن زکریه رازی زکریه رازی پدرشه با آدم بسیار مزفرفی هم بوده برای که این آقای محمد ابن زکریه رازی تا 40 سالگی بی, سواد بی حال این یکی از عجایبه که داره بعد میفته تو کار کیمیاگری این دنبال اینایی که تحقیقات مربوطه کیمیا میکنن و شیفون فری به شون رو که تبدیل کنن به طلا و میرن مواد سمی اینا میگیرن و گوگرد و نمیدونم شوبه و بساقه اینا و دم میدونن و دود میکنن و بودای سمی و اینا سینه شون رو خراب میکنه این بابای بیسواد هم مطابق نزیجه این بود که چشمش خراب شد چشمش خراب شد و ناچار شد برم مراجعه بکنه به کحال یعنی <تصفح> چشم به گشت کحال منزه یه قاسو به زرچوبه یه گردی آشبالی کرد تو کاخه داد بهش گفت ده دیناری شد ده دینار تلا یعنی 50 گرم تلایی رازی کسی خودش با این چه که من یک کمان ابله رفتم کنم اینه <تصفيق> آمده یه قاشق فرف زرچوار من داره می ده دیگه آمد شروع کرد خوندن در اون سن و <تصفيق> به جای کسون سابقه کیمیاگری هم داشت الکول و کشف کرده بزرگ کرد کتاب تدبیه که در اسلام نوشته شده کتاب الهاوی مال محمد بن زکریا بود. که هنوز معلوم نیست چند جز داره گفتن هفته ها جده بس اجزای زیادی نمیدونم من الان که چاپ شده یا نه تمام از طور و اگر برای جامعیت یعنی تمام علوم بگیریم ابن سینا فیلسوکا اوله که همه چیز داره میدونست ولی اگه تیب با تنها رو بگیریم ابن سینا انگش بچگه رازی هم نمیشی و رازی تقریبا صد سال یه خود بیشتر از عبسین ها قدیمی تاریم خیلی قدیمی برحال حسینه به منصور حلاج عرض کنم که سکوپی بوده که وجودش خیلی خیلی موثر بوده و مثل همه آدمای بزرگ آدمای آدم های, آدم های دوستان خیلی قبلی و دشمنان خیلی قبلی این آقای خمینی رو به گروهی اسمش رو حاضر نیستن ببرن و فکر میکنن که این خیلی آدم ولیست و اصلا اردیسه یه دست دوستانم داره که تا همین حد حاضران سر خودشون در راهش بدن همین حالا بعض از سالها که مورد این نشون میده که این آدم بزرگ. که آدم ولی میافتن دیگر ندارن وجودش منشه اصلی حلاج همچه آدم. یعنی دوستان داشته که جان در راهش میدادن و دشمنان داشته که آخرش دلکش کن و ها داره حتی در حال سوپیان بزرگم یه ادهی طرفتارش بودن یه ادهی مخالفش بودن بنده یه کتابی الان دارم در زیر چاپ امیدوارم انشاءالله که همین سال منتشر بشه به نام کارگاه سیال احوال ادهی از دایران و نویسندگان کلاسیک سعدی مولانا فیحقی سیاست دامه خاشنزامور ابن خلدون اینا رو گفتارهایی در اون کتاب دارن یکیش هم راجع به حلاج و هست اینو بعد معروف شده به منصور حلاج در حال که حسینه به منصور و هر حال حافظم میگه منصور چون منصور از مرادانان که بر بر به معنی میگه اون کسانی که نیوه درخت مراد رو چیدن نیوه مراد رو دارن کجا هستن؟ سر دارن. اما دار دوم دار دوم معنی درخت. همین جاری که آدم آفزون میکنن دار معنی درخت. هنوز هم تو تهرون میگن دار درخت در مازندرون میگن دار اصلا درخت میگن میگن دار و وقتی بارون میاد و بارون تموم میشه و یه مقداری رو برگای درخت میمونه و آدم که میره یه وقتنش میخوره هر این بارون ها سرش اون بارون ها رو بشن. دار باران، دارباران دارباران یعنی بارون که سر درخت مونده در قدیم اشخاصی رو که دار می زدن آبیزونشون نمی که آبیزون کردن در 5 دقیقه کار پنگ کمتر کار تمام میکنی که اینا یا یه درخت ساده رو یا دوتا درخت رو شکل صلیب رو سلیب ایسا دار رو کنید ایسا هم دار سد بعد این محکوم رو می اون درخت اگه درخ بوده از پشت میوردن میبستن، پاهاش هم میبستن بزرگترین شکنجه براش این بودی که هم برش کنن برای اینکه این بعد از چند دقیقه تمام این شریاناش اینا بسته و خون نمیرسه و در صفحه میشه با دردهای خونناک و این روزهای متوالی باید پریاد بزنی تا بعد دنید این بدترین نوع چی از این ملایمتر این بوده که با سنگ بزنه یه صحنه از این سنگ بارمی کردن و در ویلس دار زدن حسنک وزیر در تاریخ بیهدی مفصل نعبی کرده و اون بردار کردن حسنک وزیر استوده یه جزوهی جس سری جزر از 560 تا جزر که برای تدریس در دانشگاه تهران تهیه شده بود و استادا همه استادهای بزرگ دانشگاه هم شرکتشتم از این پول اسگردن این مجلس بردار کردن که کیوزیم از خیلی قدیم به صورت اون جزر در اومده الان با یکی دو دلار شما میتونید به نشر کتاب بدید این قصه بردار کردن حسن کیوزی نمیست یعنی لازم نیست خود تاریخ بیایید تهیه کنید بعدم رسی حسنک که توضیح و تفصیلم هم دادن همه چیز چیزای مشکلش رو اونجا هم و جوزی چون سرش میخواستن ببرن و برای خلیفه یک کلا ها گذاشتن آهنی گذاشتن سرش دورتش در اثر انداختن سنگ صدوه ندارد و بعد طرو کردن به سنگ زدنش بستن به دار مشتی رند راستیم دادن به مردم که نمیمودم سنگ زنگ خیلی مرده برام بود یه چه آدم اوباش بی سرفا رو پود دادن که بیان سنگ بیان بزن ولی مرد بیده همون اول مرده بود برای اینکه ذهن انداخته بودن به گروش که رو دوندن به دار همون ذهن خفه در اون کش بختانه و این نراحتی رو ندید و از همه آسانترش این که تیو بارون کنن و در نهچه تیو بارون در ظرف لاغل یکی دو ساعت بابا با. این طریق دار زدم. و به همین دلیلم گاهی می شده است که کمک برسه و اینا رو از دار بیارن پایین تو داستان های عوامانه خیلی این صحبت هست که بعضی از پهلوانان طرف رو می گیرن می دار میزنن و بعد خان تیر بارون کنن دوستانشون می ریزن و حمله میکنن و دار را محاصره و اینا را می پایین یعنی اون تناب را و از دار می شون پایین این حل غاویز کردن ست سال هم شاید از باهمش نمیذارید خیلی کار تازی است بنابراین اگه کتاب قدیم کنید دار زدن دار و دار و اینا فکر نکنید که همین دار ایست که منصور هم همین کار کردن اولا دستاش و اینا رو بریدن بعد دارش زدن یه چندگی هم دار رو دار گذاشتنش بعد از آشوب مردم ترسیدن جسد آوردن پایین سوزوندن و خاکسترش رو رویخن تو او میگه چون منصور از مرادانان که بردارند بردارند بردارن بردارن بردارن برای اینکه منصور گفتود انالحق انالحق که گفتود من خدا هستم معنیش منی که منصوری در نیون نیست من در وجود هفت حل شدم فنا شدم و دوستان کسانی که می‌خواستن می‌دونستان اینه کسانی که می‌خواستن پرونده بسازن گفتن آقا دعوی خدایی کرد. میگه کسانی که از میده مراد چیدن جاشون بالایی داره. بدین درگاه حافظ را، میگه حافظ هنوز اون سعادت رو دیگه نکرده. بدین درگاه حافظ را چون می‌خوانن، می‌خوانن. وقتی حافظ در این درگاه می‌خوانن، باز پسش می‌کسن. میگن تو شایسته‌ی این هنوز من به نظرم میاد که میورشه دارن بعد میرن سر دار نه چون سر دار هستم میوه بله، حالا به هر حال به نظر من میاد که بهتر اینه که آخرین یعنی هستاستن این قسمت رو بزاریم آخر جنبه به این که از مراد نیوه به دست آوردن کسانی این هستن که سرشون باختن بهتر اینجور حالا اگر اینجورم بهشتن نه، نه در این حضرت، حضرت به معنی مجلسه در این حضرت، چون مشتاقان نیاز آرند، یعنی آرن. در این مجلس اگر کسی بیاد نیاز بیاره، در جواب ناز کرد گفتم، هر که در این بعض تر است، جام بلا بیشتر. چرا؟ چرا این کار میکنن؟ میگن، تو خیلی عبلهی که با این درد خوش نیستی درد عشق از تندرستی خوشتر است یار چه غیر از سفر درمانی جسمی ولی <تصفح> بله؟ یار دلیداری به دلبندی بده دل. زای آنچش پارک سلطان میشن. ماجرای عقل بردن پیش عشق محال است فرما نیست عارفان در بیش ساح درد را پادشاه خوانند اگر نان خانه زندان است تنهایی ملال هر که چون سعدی بلستان میگه کسانی که با این درد، با درد عشق دنبال پندرست نمیاد می اینا به درد عشق نمیکرند و همین دردی باید ناز پردید که با این درد، اگر درد بند درمانند درمانند، درمانند بیتش. نه اینجا اولایی که مال نسخان لاری یکیش میخوانند دیشتر میرانند عقبتره. سه بومی قافیهش میخواننده درسته پیت شیشون قافیهش میراننده ولی اون خوندن بالایی و عنی قراعت کردنه میگه رازو رو میخونند این خوندن پایینی رو عنی دعوت کردن یعنی معنیش پرده. اما هر حال هر دوت قافیه نمیشه میگه وان آخه قبلش هست و این مضمون تکرار شده گفتم میگه صحبید که درد عشق هستن درستی باشتن میگه که درد عشق داره و تا اونبال درمانشه این آدم بی خودی اصلا قابلیت عشق نداره اینکه وقتی بیاید پلو معشوق جز ناز صحبیده نیست و اینکه با این درد کسی که در بند درمان باشه در درمانده باشه مضمون رایجیست خیلی یعنی تازه نیست که آدم به خب مرز کنم که عزل یکی از شاه عزل های خاجه هست شما میخواهم بخونی ما بفرمین نسخه نسخه نسخه خلاه مندیس نسخه این جوی که نیست الو منال بكيفك خطه دوله انا الو او تو حسابو به کرامت خلاب نرگس مست تو تاجداران خراب باغه لحلت تو خوشیاران تو را و مرا آب دیده شد قمنا و اگر نه و رازداران زیر ظلف دوتا چون گذرکنی بنگر که از یمین و یسارت چه بیدراران گذار کن چست بر بنفشهزار و ببین که از تطاقل زلفت چه باران نصیب ماست بهشته خدا شناس برو. که مستحق کرامت گناهدارانم نه من بران گل عارض غزل سراغم و که اندلی به تو از هر طرف ازارانم تو دستی سوئی ای فضل پی که من تیابه می ددم همراهان سوارانم هم. تیابه می و چهره اردوانی کن مروه به صبح. کنجا سیافتاران هست خلاس حافظ از آن ظلپ تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگاران باز این همون بیت آخر غزل قبلی که هرگز مباد که من از اون ظلپ تابدار خلاص کشم یعنی اصیر کم عشق بموند این غزل شاه غزلی یک از شاه غزلهای حافظه که تمام ویدهاش بدون استثناء شاه و یک دونه ویده یه ضرب پایین تر این نصف این بله، ذیر دو زلف دو تاتون گذر کنید گذار کن، بله ببین درست، درست. قلام نرگس مست تو تاج دارم. بسیار راست. تاج دارم، پادشاهان دیگر، به اصل رشته برده حسین، قلام زرخری حسین شد. قلام کاملش محمود غزنگی اولین پادشایی که نام سپورتان و قدرتش قدرت امتهایی بود یک که سرک بچه توپونی بوده نفش ده سالگی این بچه رو میبینه از دیافه این بچه خوشش میاد و سوالی می‌کنه این بچه جواب مناسب میده بچه رو خیلی تیز به پدر مادرش میگه که اینو به من سعی میتونم که اونو تبدیلش میتونم من قبول این دسته در نورزامه خیلیام هست میبرش این هم اون عیاز آقای مقاله مجلی فیروسی مرغوم پرموزوه هم سرنقش دوزفی آقای عیاز و شرح مفصلی داده بودن در باب این محمود غزنوی دوازه که جوزی یاد داره با عیاز کارهای بد بد این ابلهیس به این دلیل که محمود غزنوی امکان اینو داشت که دو هزار تا غلام مزکر و دو هزار تا کنیز زن بگیره که همه خوشگفتر تر عیاز وقت در مرز موت آگه داشته میمیره میگه عیاز رو بگیم بیاد بالا سرمید دابوت میخواستن از اون کسی <تصفح> <تصفح> که نمیفهمه اینو کاری نمیچه کرده آقا تمام اون زن ها و و تمام اون غلام ها همه اون چیزی رو که عیاز داشته داشتن چرا یکیشون عیاز نشده پس یک چیزی داشته ایاز که اونا دیگه و مسئله اون بوده مسئله این که من نمیدونم حالا کاری هم کرده یا نکرده من که وکیرشون نبودم سر طرفم هم که نداشتم اما این همه آدم اونجا بوده این یه عمر ده از عیاز و نداره و آدم درست و حسابی زاهد عابدی مثل شیخ عطار حکایت های متعدد در کتابش درباره باره محمود عیاز. این نمیشه که این که اون فارد اینقدر پود تفسیر و اینقدر چیز نداره که و اون وقت موارد متعدد از موقع شناسی و نتسنگی و حاضر جوابی و اون چیزی که حبیبتاً محمود رو به اون اونجا بخلید. و در زمین ها من یک جای خوندن که نمیتونم بگم که میگه که تو محمود رو میگه تو غلام من بودی ولی من حکوم غلام تو همیم نیمیگه نیمیگه این میگه احیانا نشاره خاجب به محمود غلام نرگس مستفت تو تاجداران هم خراب باغذی لعلت تو حوشیاران هم اینجا حوشیاران نمیه صاحب معرفت آدمای با بافهم همه اسیره شدن البته در این حال به خودش اینجا اشاره میکنه یعنی شعر حافظ هزار پهلی داره فکر نکنیم که اگر گفتم که این اشاره شدیم یه یعنی پوچه میگه محمود داشته بعد میگه تو را سبا و مرا آب دیده شد خماز ماجره ماجرایی که بین خودش و یه آدم دیگه بوده میگه هیچ اشکالی نداری مثل شعر حافظ و ارزش فوقالداش به همین مناسب میگه سخنچین حالا میگن افشاگر در جمعیتی است افشاگر تو باد سبا بود افشاگر منم عشدی چشمم بود باد سبا بوی خوش تو رو میمار برد و آب دیده منم راز دل منو آسپار کن وگر عاشق و محسوب رازدارانه عاشق و محسوب بعد راز خودشون رو برملا نمی کنه. اگر اتفاقی افتاد که حدیث عشق ما بیرون درس کرد به دلیل تو یا من نبوده یکیش بادسوا بوده یکیم آب بوده تحمازم نمیم سخنچی زیر ظلف دوتا آتون گذر کنید بنگرد که از یمین و یسارت چه بیقراران فکر کنید که محشوب ظلف دوتا کرده بلند. و بافته یا نبافته راه که میره اینا تفون میکره در این حال این آدم زیر اون ظلفه بالاترین قسمت سر تو از زیر زورتی دارید یه وقتی از زیر زورت دوتا داریم میگذریم نگاه کن ببین از یمین و یسار تو یمین یعنی دست راست یسار یعنی دست چپ تو که از یمین و یسارت چه بیدر آرامه حالا اینجا چه میگرانند هم ممکنه اشاره به اون دو لفظ ظلفش بشه که تکون میخورند هم یعنی در یمینی اسارتون تو نگاه کنیدون چقدر آدم به عشق تو بیقرارند بنشستند گزار کن چه سبا بر بنفش زار رو ببین در از تطاقل ظلفت چه سوزگاران بنفشه مثلا این بنفشه ای که اینا میگن بنفشه فرنگینی بنفشه تبریه بنفشه سیار مازنورین زیاده صافی دراز ناصفی داره شبش میگن زول بعد گلش کبوده و نظر که سرش پایینه رنگ کبود رنگ ماتم زنی و نشانش مثل باد صبا تو در بنفشه دار کن ببین که از تطابل یعنی دست درازی دراز دستی که از تطابل تو چه جور اینا سودوار شدن؟ یعنی وقتی زلطتو به میون اومد کسی بنافشه رو اصلا محل نگذاشت باشه کسی اصلا بازار او به گلی این که سودوار میشستیم از ماست ببینید در یه بیت دیگر یه خاجه میگه که قدم تریف ما دار از جنازه یه برای گاهی بعضی از این پشت مقدس ها همجور که ارز کردن بگه این که اشی ستایشیده و اونکه هم زمین روزه میکرده که و نمیمدن سر نماز نیگه که بگه که آدم سالم نماز نماز درشون بخوره ما براش نماز, نماز نمیم حافظی که قدم درید ما داره از جنازه های است به گرچ قرب گناه است میلوید به دهشت تا تو میتونید نصیب ماست بهش ای خداشنات خروت که مستحق به کرامت گناهکاران گناهگاری که میتونه کرامت و کرم خداوندی رو آشکار کنید اونه که مستحق به کرم خدا. بنابراین ما گناه کردیم که کرم خدا رو آشکار کنیم و بهش نصیب ما نه من بران گل آرز و از ال یا آرز یعنی رخسار. گل آرز یعنی رخساری ای که مثل گل میگه من تنها به بول رخصار تو قزل سرا نیستن بقید من تنها نیستم تو این مصرهای دوباره میشه هم بشنگی که اندلی به تو از هر طرف هزاران هست بول بول تو هزار تا در این حال هزارم هم خودشانی بول بولی که اندلی به تو از هر طرف هزاران هست. تو دست نیست. تو ایک هزر گفتن که دوتا پیدم برای تا عمر جاوید برای ایک هزر و ایلیاست و ایلیاست در دریاها فریادی درمان نگانی میرسه و خزر و گفتن که اسمشو گفتن خزر برای اینکه هر جا میره زیر پاشت سبت, سبت, سبت. و هم ابول عباس و های بسیار هست از آبدان و زاهدان که اینا فزر رو ملاقات حتی بین آمنه ناسم معروف که اگر کسی چهر به در از دمیدن صبح آسمان تاریخ سهرم نشد آجاری کنه از اونکه خیز بکنی خبتن یک مردی نرز کرد و شد رفت بودت و آف رو بزرگن نو بود خیلی هم شد سویلو مشغول <تصال> بود نیگاه که از بید سه دو از حالا دا حتی مثلا سه و شب آمده گفت سلام علیکم منش دقیش کار میکنیم گفت دارم اینجا رو آبو جارو میکنم این وقت شب چه وقت آبو جارو؟ گفت دیگه تیز کن دیگه بکن به حاله برحاله آبو جارو بودم گفت بو نه تو یه محصولی بگیم بالاخره گفتش که آره من محصول من جارو کردم که مثلا من خیزم هرچی میخوایید داخل تو سیدوسین برقالی خوب با من خزرم دونه تو خزرم هرچی میخوایید بخواه الان از من گفت ویل تو سیدوسین اون برقالی کنم سه چهار راست کنم من خزر تو خزری گفت ولی تو خزری این بیلو بکن فارو. <تصفيق> یه وقت نگاه که بیل سیدوسین برقال نیست بیل یه اندید از به پارود حالا بیل چهار تومن قیمه از گفتن که چه رو زحمت نیشید گیده خود و هر حال خضر و فریاد درماندگان و گمشدگان میرسه اینی که میگه ای خضر پیخوجسته پیخوجسته یعنی قدمت مبارکی پیخوجسته یعنی مبارک قدم تو دستیر شد ای خضر پیخوجسته که من پیاده میره همراهان سواران بیا به میکده و چهره عرقبانی کن در میکده مصدیست و راست نیم من رو به صغنه این کنجا سیاهگاران هم بوشن کن حافظ از آن طلط تاقدار، ما نبا هیچ وقت اختفاق نیفته که حافظ از آن طلط تاق خلاص شد چرا؟ که بستگان کمند تو رستگاران یه نکته هم هست باید بگم که قاعدتاً در پارسی صفت و مصوب با هم متابقه نمی کنی میگی مرد خوب مردان خوب نمیگیم مردان خوبان با بعد زن بد ببخشن زنان بد. زنان بد زنان بدان ولی گاهی اتفاق نفته که صفت و رو با هم متابقه می ده خلاص حافظ از آن ظلپتاق دار من باید که بستگان کمن به تو بعد بگه رستگارم ولی میگه رستگارم و نظایر این که اونجا هست بیت دوبان بازه تو را سباق و مرا آب دیده شد خماس و اگرنه آشق و محشوق رازداران هست رازدار هست صفت متابقه ولی این قاعده هست به ندرت گاهی اتفاق میفته که این کارو میکنن یعنی صفت با منصول مطابقه میدن و این غزل حافظ ایک یکی از این نوالا نه میدونم به فرهنگ یاد نخیل, نخیل, نخیل, نخیل خلاس یعنی رحایی میگه من باعات که حافظ از اون رول پتار خلاس حافظ یعنی رهایی حافظ از اون رول پتار هرگز نبود